ارائه شده توسط وبسایت سنت دانلود الحمد لله و والسلام على رسول الله ومن تبعهم بالهدى إلى يوم الدقا و بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال تعالى في شأن حبيبه ومدح نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل از هر چیز الله زلجلل را شکر گذاریم که خداوند متعال به همه من و شما توفیق عنایت نمود تا در این مکان مقدس مکان الهی گرچه خداوند متعال از جا و مکان پاک و مبرا است اما چون در این مکان انوار و والطاف الهی بر اثر سجده انسان های سجده کننده دعای انسان های دعا کننده تلاوت انسان تالی سرازیر می شود به مکان الهی شده است خداوند متعال چنین توفیقی انایت نمود که نام دیگر آن هدایت است جلسه ای که برای اولین بار در شهرستان فنوج با عنوان همایش سیره نبوی صلی الله علیه و تدارک دیده شده بنده هم به خودم به همه شما مردم خونگرم این شهرستان و به ویژه بانیان این جلسه مدیریت محترم مدرسه دینی جناب مولانا عبدالرعوف و همکارشون جناب مولانا سعید و دیگر پرسونل تعلیماتی و خدماتی که اینجا سبب این برنامه شده اند تبریک و تهنیت و تقدیر و تشکر می کنم. حال ارحال جا دارد هم عرض سلام و عدب و احترام داشته باشم خدمت همه بینندگان محترمی که از صفحات مجازی این برنامه را به صورت زنده مشاهده می کنند امیدوارم در هر گوشه از دنیا که هستند با هر زبان و اعتقادی که الله تبارک و تعالی این توفیق را در میزان حسناتشون بنویسد و سبب هدایت ما و آنها بگرداند و همچنین تشکر و آخرین مقدم دارم خدمت همه علمایی که از خطه خراسان خوشنام به, به, به،, به ویژه شهرستان عارفان شهرستان جام تورت جام شرف حضور پیدا کرده در رأسشون استاد ارجمند جناب مولانا بهزاد فقی و هیئت بنده به عنوان مقدمه این جلسه و مقدمه صحبت های عزیزانی که بعدن اینجا صحبت می در خدمت شما خواهم بود امیدواریم که الله عزیزالجلال لحظاتی را که در خدمت شما گرامیان هستم به این طلب توفیق گفتن و به همه من و شما توفیق عمل کردن انایت بفرماید سعدی چه زیبا سرود است که شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی غنیمت است چنین شب دوستان بینی افتخار می کنم که در جمع شما گرامیان هستم اما سعی می کنم اتاله کلام نکنم و با استناد به این شعر زیبای عارف مشهور دل ز گفتن بمیرد در بدن گرچه گفتارش بود اندر عدن با مقوله مشهور و منتصب به سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه اسکی فرماید انظر إلى ما قال ولا تنظور تنظر الی من قال شما نگاه کنید که چی میگوید اما نگاه نکنید که کی میگوید ان شاء الله دغای را که در خدمت شما گرامیان هستم بنده را و صحبت‌های شکسته ام را تحمل نمایید عزیزان این جلسه و این نشست منتصب به سیدنا محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم شده است امشب میخواهیم از محمد بگوییم صلی الله علیه وسلم از احمد، از طیب، از طاهر، از طاها و یاسین از سلاله پاک ابراهیم خلیل الله. از فرزند ناب اسماعیل ذبیح الله از جگر گوشه عم العرب هاجره رضی الله عنها از کسی که نابترین خاصترین نامهای تاریخ بشریت را به خود اختصاص داده احمد محمد نامهای اختصاصی رسول الله چون خودش خاصه شخصیتش خاصه معجزاتش خاصن افکار و انانددی خاصه، اعتقادش خاصه دین و نگرشش خاصه همه ایدههایش ایده, ایده نابی هستند امشب می از این انسان و از این انسانی که تاریخ بشریت را رقم زد صحبت بکنیم. از محمدی که تنها برای عرب و عجم نیامده از محمدی که تنها، برای یک قشر از مردم مبعوث نشده، از محمدی که برای همه انسانها مبعوث شده، وجود نازنینش رحمتی برای تمام جهانیان است. شما میدانید، محمد صلی الله علیه و سلم، این نام زیبا منحصر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، نامی که یک انگیزه بسیار قوی در آن وجود دارد. نامی که رسول الله را از دیگر بیا برجسته می کند، این نام، نام زیبای محمد است، نامی که الله تبارک و تعالی این را به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیبنده دیده و اون را با این نام مزین کرده است. محمد یعنی پیامبری که از همه انبیاء علیه صلی اللہ علیه و الله عز جلال اون را بیشتر تعریف و تمجید میکند ما همین آیه را وقتی در خطبه ها ان الله و يصلون على علی النبی الله عز میگه من الله به اتفاق فرشتگان بر رسول الله صلی الله عليه و درود میفرستم شما ای انسان ها ای مسلمان ها در این شرف بزرگ سهیم باشید و به همراه من الله و فرشتگان بر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود بگویید. یکی از زیباترین ترین نام های رسول الله احمده احمدی که به معنا این است که از همه انبیو علیه صلی اللہ این پیام این انسان خاص خدا را بیشتر بندگی کرده است ورم کردن پاهای رسول الله در نمازهای شب دعاهای متوالی رسول الله انگام تاریک شدن آسمان و عبری شدن آسمان و توفانی شدن آسمان صدقات رسول الله در میدان منا، زجه های رسول الله برای امت و آخرین ندای رسول الله صلی الله علیه وسلم که امتی امتی میگفت شاهد این مدعا هست ازا پیامبری که زیباترین نام ها را به خود اختصاص داده پیامبری که خدا این گونه اونو ستایش میکنه پیامبری که الله جل را با این ویژگی ها بندگی میکند ما امتی این پیامبریم ما پیرو این پیامبریم پیانبری که در ارص عصری مبعوس می شود که جهان را ظلمت و تاریکی بیبند دوباری و جهالت فرا گرفته اما با واژه زیبای اقرع الله جل جلال استارت نزول وحی را می زند اقرا این کلمه و این واژه بسیار زیبا و مقدس که بیانگر خواندن و نوشتنه که تقریبا 775 بار این واژه و مشتقات آن در قران عظیم شان ذکر شده است واژه علم، واژه خواندن، واژه نوشتن، واژه تعلیم و تعلم لذا پیامبر صلی الله علیه و سلام میشود می تا یأس و ناامیدی را از جهان برچیند و به جای امید را در دل انسانها زنده بکند خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم را در غار حرا میگوید اقرأ بخانه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا شخصیت پرستی، انسان پرستی از دنیا برچیده شود و جایگاه آن نور و توحید و هدایت و رحمت و رعفت جای گزین باشد. به بخانه رسول الله صلی الله علیه وسلم تا انسان ها به خود بیایند خود را باور بکنند و خدایشون را بشناسند. اقرح بخوان رسول الله تا دیگر شاهد زنده بگور کردن دختران نباشیم اقرح بخوان تا جهالت از دنیا برچیده شود علم و هدایت و رهنمائی جایگاهش را بگیرد اقرح بخوان تا توحید جایگاه شخصیت پرستی را بگیرد اقرح بخوان که دیگر لات و منات و حضا و بل و, و از بندگی بیفتند با وحد خداوند وحد و لا شریک در بیت الله الحرام و در دنیا موهد پرستش و ستایش قرار بگیرد ز سروران الله زلجلال پیانبر اکرم صلی علیه و وسلم را به عنوان رحمت برای جهانیان می فرساد. الله تبارک و تعالی می فرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ای محمد صلی الله علیه و من شما را به عنوان رحمتی برای جهانیان فرستاده‌ام رحمت برای انسان‌ها رحمت برای مسلمان ها رحمت برای کفار رحمت برای مؤمنین رحمت برای مزنبین رحمت برای متقین رحمت برای حیوانات رحمت برای جمادات رحمت برای همه مخلوقاتی که با چشم مسلط دیده می‌شوند و یا نمیشوند محمد رسول الله آمد دنیا را با نزول بارانهای معنوی و هر رحماتش سرسبز و پیروز و سربلند نمود پیامبر صلی الله علیہ وسلم وقتی می آید می بینیم که مثل دیگر بی علیه و سلام مورد تاخت و تاز انسان های دین و انسان های که خوی حیوانی و درندگی در وجودشون بود قرار میگیرد یک روز اونها حد کرمات میکنن یک روز در متوف مورد آزار و اذیت قرار میگیرد یک روز پیروانش مثل سمیه و عمار و یاسر مورد ضرب و شتم قرار میگیرد یک روز بلال را می بیند که بر ریگستان ها افتاده و صحابه دیگر که به وسیله چربیه بدنش اون اخگرها خاموش می شوند سخت است برای پیامبر. از این هم سختتر. وقتی او را واژه ابتر را به او حواله میکنند کنند اللہ ازالجلال نازل میکنه، خدا این دعوتگر بزرگ تاریخ بشریت این انسان آسمانی را این گونه حمایت می کند و می فرماید ان ای رسول الله نگران نباش من به تو کوثر عنایت کردم کوثر به معنای منفعت بزرگ کوثر به معنای خیر کثیر کوثر به معنای حوض کوثر در بهشت کوثر به معنای اون آب‌های منشأبه‌ای که از بهشت در میدان محشر در اون روزی که هیچ چیزی انسان را یاری نمی‌کند به غیر از رحمتو الفت الهی که بر اثر طاعت و توعت و بندگی و توحید و سایه نبوت علانبین نبینا و صلوا و سلام اما کوثر به معنای دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام کوثر نه تنها فاطمه بلکه کوثر زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه کوثر همه ازواج متهرات، اناتیناک الکوثر ای رسول الله نگران نباش که من به تو کوثر داده ام دامادهای گرامیت علی مرتزا عثمان غنی عمر فاروق دخت گران سنگ حضرت فاطمه و علی به نام ام کلسون در نکاحش بود کوثر پدر زنهای رسول الله عزرت عبو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت ابوسفیان صوفیان کوثر کاتبان وحی عزرت زید ابن ثابت عزرت علی مرتزا و امیر محافیه که جامعان قرآن ابو بکر صدیق عزرت عثمان غنی کاسر اثر رسول الله عزرت سعد ابن عبی بقاس ابو عبید ابن جرح که یعنی عزرت عمر فاروق کاسر یعنی خالد ابن ولید که یعنی عسام ابن زید کاسر یعنی جعفر و عبدالله ابن رواه و دیگر صحابه رضوان الله عليهم مجمعین و از همه مهمتر اینا اعطینا کل ای رسول الله من بتو كوثر دادم مهاجرین و انصار اهل بدر و هنین و تبوک و یرمو و دا قیام قیامت بگوید لا اله الا الله و محمد رسول الله ان کاثر رسول الله است و همه شمایی که اینجا حضور دارید و یا اونهایی که ما را از لنز دربین ها ببینند همه کاثران رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند اما الله تبارک و تعالی را تقویت می کند و می و لعلا خلق نظیم ای رسول الله تو دارای اخلاق بسیار بزرگی هستی. بس وقتی خدا پیامبر را تعریف میکنه نه جهاد رسول الله نه دعوت رسول الله نه هجرت رسول الله نه زندگی مکی نه زندگی مدنی و حتی واقع افگذرتهایش را بیان نمیکند. کند اون سبوریش را اون استقامتش را اما رسول الله را خدا با این واژه اخلاق تعریف میکند اخلاق زیباترین بزرگترین شرف هر انسان هست پر نمی الله زلجلل می رسول الله تو دارای اخلاق سیاسی بلند و بالا هستی. اخلاق سیاسی اخلاق اقتصادی اخلاق معاشرتی اخلاق تعلیمی و حتی اخلاقی که پیامبر صلی علیه و سلم در میدان غزبات و جنگها اجرا کرد و اینکل علا خلق ناظی اخلاق رسول الله در زندگی بیاریم اون وقت ما میشیم انسان مؤمن قوی شما نگاه کنیم این دیوارها را وقتی آجر هستند کسی خوب نگاه نمی کند وقتی نو گچ میکنن وقتی نو سنگ میکنن وقتی انواع و اقسام رنگا و انواع و اقسام میزنند می چه اندازه زیبا می شود انسان را اخلاق این گونه مزین و زیبا میکند. ما پیروان و امت نبی اخلاق نبی حداد نبی دعوت حس می که در زندگی خودمون اخلاق نبی را پیاده بکنیم اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انسانی انسان که الله ذوالجلال می فرماید و رفعنا لك ذکرک ای رسول الله نگران نباش من یاد تو را در زمین و آسمان بلند کرده هم و رفعنا لک ذکرک ای رسول الله من نام تو را جهانی می کنم و رفعنا لک ذکرک من سنت های تو را جهانی می کنم و رفعنا لک ذکرک من دعوت را جهانی می کنم و رفعنا لک ذکرک من تفکر و اندیشه جهادی تو را در دنیا مزین می کنم و رفعنا لک ذکرک من یاد تو را گرامی میدارم و رفعنا لک ذکرک من نام تو را در تحیات در کلمه طیبه در انغام اذان و در انگام هر نا که مطلوب الله جلال باشد من نام تو را بیان می کنم و رفعنا لک ذکرک اولین روزهای متولد یک کودک با نام گرامی تو در گوشهایش زمزمه کند و نام گرامی تو اون انگیزه های درونیش را فعال بکند و اون را برای زیبا نام آمادگی عنایت بکند اما این پیامبر با این توصیف و با این زیبایی ها پیامبر عفو گذشته پیامبر رحمت و رحمت اکلیوانات درود می می‌فرما نبار اکرم صلی الله علیه و در زندگی خودش بزرگترین پروتکول اخلاقی را در تاریخ بشریت رقم می زند. وقتی آن زر الله علیه و در سال 8 هجری از مدینه منوره به مکه مکرمه برای فتح مکه مکرمه حرکت می کند. با ده هزار صحابه بریم سری بزرگ به سفر تاسیسیه تورات. که در یک از فقراش این گونه شده ان محمدن یولد بمکه و هاجر الی لا فز ولا غليز ولا صخاب، و یرجع الالمکه معه اشره الاف من القديسين. محمد در مکه متولد می شود به مدینه هجرت میکند اخلاق زیبایی دارد در زمان حیاتش ملکش تا شام گسترهش پیدا میکند و با ده هزار قدیس و صحابه به مکه مکرمه برمی شما میدانید مکه فتح شده است ده هزار صحابه شمشیر بدست برای انتقام خون حضرت سمیه صف کشیده هند ده هزار صحابه شمشیر برای انتقام خون عزرت حمزه و اون ریحانه های رسول الله در میدان احود اونجا سفارایی کرده اند. ده هزار صحابه برای انتقام خونهای شهدایی که در واقع بدر جانفشانی کردهاند اونجا سفارایی کردهاند همه دشمنان اسلام در این محدوده محصور شدهاند اما صحابه می بینند که ما محاصره کرده مکه را کسی نمیتواند فرار بکند اونجا دیمی اعلام میکنند الیوم یام الملحمه امروز روز انتقامه اما این جمله را پیانبر میشنود بیان میکنه الیام يوم المرحمه امروز روز رحمته روز بخششه شاید تو ذهن شما بیاید که در زمان حضرت یوسف هم برادرانش را بخشید یوسف برادران نسبیش را بخشید که از پدر و مادر و یا از پدرشون هستند. اما اینها قبایل مختلف، رنگهای مختلف، زبانهای مختلف، گرایشهای مختلف، با نسبهای مختلف را رسول الله میبخشند. اونها قتل نکردند. اینها بر علی خاتم و نبی لباس جنگ پوشیده و در میدان کارزار ساده ان. اینها با قرآن و سنت جهاد کردند. اینا بر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم قد علم نمودند و پیامبر و صحابه رزوان الله علیه اجمعین برای دفع کردن اونها اعلام جهاد نموده. این دایمیه آیات صفوان بن امیه فرار کرده است. یکی از سرداران قریش میخواد خودش را در دریا بیاندازد. عزرت عمیر آمده یا رسول الله این رئیس قبیله ماست میخواهد خودکشی بکند من از سما درخواست امان میکنم پیامبر بهش امان میدهد اما میرود عمیر برگرد صفوان میگه نخیر باید یک نشانی بیاری که من صفوان را محمد رسول الله بخشیده پیانبر اش را میدهد چنان بعد از ایمان آوردن همین صفوان سر ساجد ترین کسی رو سیام کسی رو قرار میگیرد که الله زر جلال خودش بیشتر میداند ما اما عبدالله ابن سعد ابن عبیسر برادر رضایی عزرت عثمان رفته کنار عزرت عثمان درخواست امان می کند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طبق درخواست عزرت عثمان رضی الله عنه امتغازاش را میبخشد قبول می کند ایمان می آورد و در حالت سجده همین عبدالله ابن سعد ابن عبی سر وفات می کند ابن عبی جال، فرزند ابو فرار می به طرف یمن همسرش ام حکیم ایمان آورده نزد رسول الله می رود. در خواست امان برای شوهرش می میرود دنبالش میآورد. اما پیامبر سبحان الله چی میگوید به صحابه رضوان الله علیهم اجمعین تعلیم میدهد. این اکرمه است این فرزند ابوجل است کسی ابوجل را فوش ندهد که فوش مردگان به مرده نمیرسد اما زندهها را آزار و اذیت میکند چه اخلاق زیبایی چه گذشته زیبایی که جهان نظیر آن را نمی بیند بلال حبشی کسی که ریحانه رسول الله برادر رضایی رسول الله اموی رسول الله را به شهادت رسنده بازم پیامبر اونو میبخشه اما بر اساس طبع بشری میگوید خیلی کم روی من ظاهر شد این پیامبر زیباترین پیامبر شاید در ذهن شما بیاید عضرت یوسف علیه صلی هم زیبا بوده آیا یوسف زیباست یا محمد یا محمد رسول الله یوسف زیبای زمان خودش قبل از بیست رسول الله ولی محمد رسول الله این و افتخار بشریت زیبا ترین خوش کلام ترین خوش مشرب ترین تاریخ بشریت عزرت صدیقه الله عنها ام المومنین طیبه طاهره مجته محدثه رضی الله عنها می فرماین یوسف دیدن رو پوست اما اونهایی که محمد رسول الله را دیدن جان دادن. شما میدانید سمیه تا آخرین لحظات شهادتش عزرت بلال عبشی، عزرت خوبه بخباب و عزرت زید که مسلمه کذاب اونو نمود و دیگر صحابه رضوان الله علیهم اجمعین یک لحظه، یک جمله، یک کلمه بر علیه رسول الله مصاحبه ندادند ما این زیباترین انسان شاعر میگه گر پدر خورشید باشد ماه مادر فلمسل در زمین ناید به خوبی چون تو فرزند دیگر حسن یوسف ذره از حسن رخصارش بود گر عالم فداش فدایش بر چینین دل بر رواز ازا سروران اما طوری که کردم مختصر صحبت میکنم و صحبت های بنده مقدمه برای صحبت های سخنرانان بعدی استاد مولانا بهزاد فقی استاد مولانا اسحاق سپاهی و دیگر خطبا هستند خوشحال شدم که در خدمت شما گرامیان بودم بار این وصل را هجران مکن سرخوشان عشق را نالان مکن بر درختی کاشیان مرغ تو شاخ مشکن مرغ را پران مکن نیست در عالم سهجران تا هر شي لكن إن ما كن. قولي هذا، وما علينا إلا البلاغ المبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.